روند مرگوا تارس دیسکورس امشب درباره روند مرگ است. این تجربه ای بسیار غیرعادی است. من هنر مردن را بهتون نشان می دهم تا ببینی روح چگونه کاالوت را ترک می کند و با ورود به کابد دیگری حیات دیگری را آغاز می کند. در اینجا خواهی توانست روند مرگ جسمانی را مشاهده کنی. ذهن گوش کردن به سخنان کوتاهی که میگویم، روی تخت دراز بکشد. روح در هنگام مرگ قاعدتاً باید از ناحیه غده سنوبری که بالای سر واقع است، کالبد را ترک کند. باز هم میگویم قاعدتاً، اما نه همیشه. در مورد بشری که صاحب وضعیت آگاهی است، روح می تواند از طریق هر یک از چاکرها کالبد را ترک کند امروزه اکثریت نوع بشر در این وضعیت قرار دارند باز هم روند ترک کالبد را به تو نشان می دهند. این عمل روند ساده است که با صدور اجازه به روح برای ترک کالبد از طریق چاکرهای نیلوفر هزار برگ. باید میشود. اینک میگذارم تو بمیری حرکت نکن. کاملا بی حرکت و در انتظار اینکه چه تجربه ای پیش خواهد بود دراز کشیده بودم. احساس کخی از پاهایم شروع شد و رو به بالا خزید تا به ناحیه قلب رسید و در آنجا متوقف شد. دوباره آغاز به صعود کرد. تا احساس کردم چیزی از کالبدم خارج می شود آنگاه مثل پرنده در هوا به پرواز درآمدم فهمیدم که این کالبد احسیری هم بود که از جسم خارج شده بود بار بازارتارز ایستاره و مشغول نظاره معبد خاکی من بودیم که بر روی تخت دراز کشیده بود نه نفس میکشید و نه به حرکتی واکنش نشان میداد. رنگ صورتش خاکستری مایل به خاکی بود. چشم ها تماما باز بودند و بدون اینکه نشانی از حیات در آنها دیده شود، به نقطه‌ای نامعلوم خیره شده بودند. میزان تشعشع حاله به تدریج کم میشد. لبهزارتار اشاره کرد: می‌بینی؟ همه این معبد خاکی بشری را ترک می‌کنند. تنها اعضای رشت کننده ای که در آن باقی میمانند، ناخنها و موست این دو عضو برای مدتی رشد میکنند و چون تغذیه نمیشوند اندک اندک می‌میرند. این که می‌بینی تو در حیات فیزیکی بودی هنگام ترک کارواست احساس عجیبی از مکیده شدن به بالا را تجربه کردی. این یک امر معمول است. چون ترک کارواست خود یک پدیده عادی است مشروط بر اینکه بگذاری روح از ناحیه بالای سر کالبد را ترک کند همان گونه که در تمرین معنوی تجویز کردم در جهان فیزیکی بشر تماما یک حیوان است یعنی او صاحب یک کالبد فیزیکی است که شرقی ها آن را ایستول شریر مینامند درون این معبد خاکی کالبد اسیری یا سوخ شریر قرار دارد که از قماش لطیفتر بوده و به خاطر تلعلایی که دارد نوری ساروپ یا کالبد نورانی نیز خوانده می شود هنگام دیده شدن گویی از میلیون ها ذره نورانی کوچک تشکیل شده است که مثل گرد ستاره ای دائما روشن و خاموش می شوند. این کالبد بی مراتب از کالبد فیزیکی سبکتر و ذریفتر است کالبد اسیری در هماهنگی با شخصیت فرد به خود شکل میگیرد به عبارت دیگر فریبكاری مبدور نیست این کالبد مانند کالبد فیزیکی دارای پنج پس و سه دسته چاکراس پس از مرگ کالبد فیزیکی این کالبد به طبقه اسیری میرود و به مسابهع افزار تجلی روح در طبقه ای بالاتر از حیات جسمانی عمل میکند درون کالبد اسیری کالبد دیگری وجود دارد که کاملا از آن متمایز است این کالبد کاران شریر به معنای کالبد علی یا ذهنی نامیده می شود در این کالبد است که علت باقعی یا بذر همه اعمالی که قرار است در زندگی ما واقع شود نهفته نه است نام دیگر این کالبد بیت شریر به معنی کالبد بذری است غماش این کالبد به مراتب لطیف تر از کالبد اسیری است این ساختار را به دو بخش تقسیم کرده و به هر یک نام جداگانه ای دادند یک بخش آن ذهنی است که مانند غلافی نازک به دور روح پیچیده شده است و نسبت به تأثیراتی که از روح می بسیار حساس است عملکرد این بخش از یک طرف فرستادن و گرفتن علائمی است که ما بین ذهن و روح مخابره میشوند. از طرف دیگر همین عمل را بین ذهن و کالبد اسیری انجام می‌دهد. بایگانی کامل تمامی تجربیاتی که بشر در سراسر تمامی هستی خودش در عالم حیات کرده است در این کالبد به ثبت رسیده است. در نتیجه این تجربیات شخصیت فرد شکل می‌گیرد. و حاصل شخصیت فرد رفتاری است که او از خود بروز می‌دهد. دهد کالود ایلی یا کاران شریر هم پنج هست دارد و ده چاکرای کالود ایلی بعد از ذهن برترین و کاملترین ابزار فعالیت بشر است صحبت که به اینجا رسید این را هم بدانید که تعداد 22 روزنه یا در دریچه مینوی در مغز آدمی وجود دارد که هنوز کسی دانش کاملی نسبت به آنان کسب نکرده است چون بشر معلومات چندانی از ساختار کالبدهای مینوی خود ندارد روح از طریق ذهن سطوح پایینتر حیاتی را که در کالبدهای دیگر در حال کار است کنترل می‌کند تفکیک این دو کالبد ذهنی از یکدیگر کار دشواری است خود ذهن به روح نزدیکتر است و شبیه غلافی است که روح را دربر گرفته باشد. ذهن و کالبد تفاوت بسیار بسیارندکی با یکدیگر دارند هر دو از ذهن کیهانی در ناهی تیرکوتی اشتقاق یافتند که در رأس سه جهان قرار دارند ارتعاش هر دوی آنها بینهایت بالاست و هر دو آکنده از نور و قدرتی هستند که از روح به آریت گرفتند قلاف یا کالبد چهارم آدمی خود ذهن است که از کالبد ذهنی هم لطیفتر است و از بالاترین قدرت برخوردار است چون در نزدیکترین ارتباط با روح قرار دارد وقتی کالبد فیزیکی میمیرد و از فرشته مرگ عبور می به طبقات بالاتر سعود می کند و با گذشتن از هر طبقه ای کالبد مربوطه را از تندر میآورد. می‌آورد. ذهن و کالبد الی را نیز در طبقه الی و در مراتب پایینی جهان سوم رها میسازد. آنگاه در ناحیه بالاتر که و داس واندوار مشهور است خیش را در هیئت خالص روح می‌بیند و همه چیز را میداند. در این وضعیت روح از شعف حضور همه عالم برخوردار می‌شود بی اینکه نیاز به ابزار کالبدی برای ارتباط و مراقبه داشته باشد روح به ذهن و کالبت های مادی نیاز ندارد با درک مستقیم می‌داند کل دانش فارغ از نیاز به کالبت های مادی در اختیار اوست در این مبحث نمیخواهم مطالعه ذهن را در پیش گیرم چون در آموزش نامه دیگری خواهد آمد آخرین کالبدی که یک وجود فردی در آن تجلی می‌یابد کالبد روحی است این بارقه ای خداوندی از بهشت است که به زمین فرستاده شده تا پس از دریافت تجربیات لازم به خدا بازگشت کند کل قدرت و آگاهی در روح تعبیه شده است هرچه پایین تر از آن باشد حتی ذهن در اعمالش ناآگاه، خودکار و مکانیکی است روح به قدری لطیف است که نمی‌تواند بدون قلافهای حفاظتی با جهان های تهدانی تماس حاصل کند درست به همین علت نیز خود مقام متعال نمیتواند به قصد راهنمایی بشر در عوالم مادی متجلی شود باز هم به همین دلیل وجود یک استاد حق در غید حیات ضروری است این تنها راهی است که خدا میتواند برای تجلی در جهان خاکی برگزیند. امانطور که میبینی مرگ پایان زندگی انسان نیست بلکه شروع فصل دیگری از زندگی در زمین است تا روزی که یک پول سیاه به زمین بدهکار باشد باید بازگردد و جین خود را بپردازد داستان زندگی آبراهام لینکولن، هفت مایل پیاده روی بعد از تحصیل کردن مغازه برای پس دادن چند پنی اضافهی که از یک مشتری گرفته بود مثال زنده ای از رعایت این قانون است کالبد فیزیکی به مواد کربونی، کلسیوم و آب تجزیه می شود آدمی بعد از مرگ به ناهیه اسیری و محضر دارما رایا قاضی کارما هدایت می شود که بر تخت نشسته بر اساس نیکی و زشتی اعمال قضاوت می کند معمولا وی را فرشته مرگ می خوانند در حالی که او فقط نتیجه قضاوت را صادر می کند و کیفر و پاداش تعیین کننده باقی روند است به هر حال سرنوشت مریدی که تحت رهنمود استاد است ندست خدا مرد قرار دارد قدرت منفی هیچ نفوذی بر وضعیت او ندارد و فرشته عظیم مرگ را نیز ملاقات نخواهد کرد استاد کارمای مرید را آنگونه که صلاح می داند تنظیم میکند در تبقه ذهنی مرگ بیشتر شبیه خواب است و سررسیدن آن بسیار نامحسوس میباشد اما در اقالیم عمیقتر ذهن نشانهایی از یک ویداری باشکوه احساس میشود در چهره متوفی معمولا حالت ای عمیق دیده میشود این حالت گاهی نیز به علت دیدن بستگان و آشنایانی که قبلا جهان خاکی را ترک کرده و در یکی از طبقات درون استقرار یافتهاند اند بر چهره فردی که در حال است مشاهده می شود در بعضی از موارد حافظه گسترش می و مترفی متناوباً افکاری را ادا می کند که دال بر پرواز روح به ارتفاعات آسمان است که واقعیت دارد چون روح حقیقتا در حال ترک کالبد است همان گونه که خودتو تو در مراقبه هایت آن را تجربه میکنی راهی که روح در پیش میگیرد تنها راهی است که به خدا منتهی می شود تجربه بسیار جذابی است کالبد درونی که اکنون در قلاف بسیار حساس اسیری محسوب شده است معمولا دیده میشود که از میان دیوارها عبور میکند غالبا تصویرها و اسوات مذکور کننده ای او را به خود فرا می خانند. اما تحت حفاظت استاد هیچ بر وی اثر نمی گذارد. مرگ عمدتا عبارت است از خلاص شدن از یک پوسته فرسوده که همانگونه پشت سر می شود که یک پروانه شفیقه خود را ترک می کند یا پوسته یک قنچه شکفته شده از آنجرا می شود بسیاری از واصلین این گونه می میرند کالبد فیزیکی دوچار اختلالی نمی شود و هیچ گونه ستیز و کشمکشی هم تجربه روبه نمی کند کالبد اندک اندک حجمورده می شود و کالبد مینوی که در شرف ترک خیش فیزیکی است نورانی تر و درخشان تر می شود هیچ تقلای دردناکی در میان نیست بلکه روح به مرکز قلب باز می سپس به سعود ادامه می تا به جمجمه رسیده و از آنجا با آرامش از کاربت کناره می گیرد در خصوص مرگ یک غیر هم همین پدیده آغاز می شود ولیکن در این حال واحد نفس به خاطر اسیان خیش فیزیکی از هم دریده می شود و کشمکش های ویرانگری را به جسم اعمال می کند. در مورد افراد سال خورده بیماریها نفسانیات افسار گسیخته حرسها هیجانات و های کهنه در ذهن به ظهور میرسند به این ترتیب پر یک از این اوارض قانون ثابتی برای خود تشکیل میدهند و از سنگر خود به نبرد ادامه میدهند تا روزی که ذهن و جسم از فرد فرسودگی قادر به ادامه حیات نباشند و مرگ میانجیگری کنند نه یک مرگ به عنوان عظیمت ارادی روح به جهانهای دیگر بلکه تیه روند انهدام هیئت زندهی که فرد در آن فعالیت می کند. یک چنین مرگی می بسیار دردناک تحقیرامیز و زننده باشد این روح‌ها برخلاف وضعیت طبیعی ترک کالبست که گونه که در تمرینات مینوی به تو آموختم از طریق چشم مینوی انجام می شود، از مجرای چکراهای تحتانی نخا از بدن خارج می قاعدتاً قاعدتا مرگ برای یک فرد نباید روندی در ناکتر از تولد باشد هنر مردن می‌تواند همانطور که تو همکنون انجام می دهی هر روز به این ترتیب تمرین شود که از میان دروازه مرگ بگذری و با کوششی ارادی وارد طبقات درون شدید مردن تجربه بسیار شگرفی است، چون باعث بیداری تو در سوی دیگر و یافتن روح می شود خیش حقیقی فراسوی افتفاعت کوه ها آسمان ها و ستارگان نفوذ دارد و بخشی از سازمان کالبدی خود توست و از طریق آن تو با روح تمامی مخلوقات در تماسی مرگ ثابت می کند تو فنا و می توانی در فردوس و در جوار خدا بنشینی اکنون در حال آموختن معنای حقیقی آزادی هستی مزالک هنوز با آن فاصله زیادی داری چون هنوز در کالبد اسیری قرار داری و تا روزی که استاد نخواهد آن را از خود جدا کنی در جهان اسیری به مرگ و تولد دوباره ادامه می دهی تا آموزش به حدی برسد که استاد تو را آماده عبور به طبقات بالاتر ازلا کند با هر بار تجربه مرگ روح اندکی ارتقای آگاهی می یابد و به شناخت روح خدا نزدیک می شود رهایی و رستگاری تدبیجی و اکتشاف خویشتن در رابطه با منشعه خداوندی نهفته در درون هنگامی که روح آماده ورود به ناحیه چهارم می شود تمامی پیوندهایش با ارکان جسمانی، اسیری و ذهنی گسسته می شوند و کشش عوالم تحتانی به ناگهان در هم شکسته می شود مرگ جسمانی پدیدهای بسیار ناچیز است به ناچیزی پاره کردن یک رشته نخ. به طور معمول هم کالبد و هم نیروهای حیاتی اسیری در لحظه مرگ از بدن جسمانی جدا می شوند اما ذهن ارتباط خود را با کالبد فیزیکی به مدت پنج روز پس از مرگ حفظ می کند و به میزانی خفیفتر سر تا هفت روز بعد از آن با جسم مرتبط است در انهدام نهایی گرچه جدایی بین ذهن و بدن نیست که انجام میپذیرد بلکه با نابودی اسیری ذهن و تأثیرات آن است که ذهن جسم را ترک میکند. کند روح از جسم به میزانی خفیفتر هم پس از مرگ کالبد جسمانی برای یک فرد متوسط رخ میدهد. این تجربه بین سه تا پنج روز بعد از ترک کالبد جسمانی توسط روح انجام میگیرد. این فریض از نخستین طبقه درون ناشی میشود. و چنانچه روح رها شده، واقعا عاشق حقیقت باشد دیگر نیازی به تناسخ نخواهد داشت مگر به تشخیص استاد و به منظور خدمت در راستای کار او در دنیا روح‌های دیگری هم که در طبقات بالاتر به فعالیت دست میزنند میتوانند پس از تک چند روز به فیض و رحمت طبقه مربوطه خود دست یابند باز هم بسته به تصمیم و تشخیص استاد هر یک از آنان ممکن است به زمین بازگشت داشته باشد یا نداشته باشد البته تعداد روح هایی که بعد از مرگ به ناهیه چهارم رو می رسند نسبتاً اندک است بعضی ها هم ممکن است تا طبقه پنجم یا بالاتر سعود یابند در این صورت می توانند به اختیار خود در تفریح آفرینش خداوندی تحیم شوند یک نکته دیگر این که ریسمان نوقری به تمامی کالبدها ارتباط دارد و مانند یک تناب از کالبد جسمانی به افیدی و از کالبد افیدی به الی و به همین ترتیب تا کالبد ذهنی متصل است با ترک هر کالبدی قطعه ای از ریسمان نوقری که ما بین آن کالبد و کالبد بعدی کشیده شده بود منقطع می شود روح به این ترتیب به مراتب بالاتر صعود میابد اکنون میبینی که آنچه روح را پایین نگاه داشته است وزن کالوت و محمول و متعلقات هر یک از آنهاست مرگ همین بود که دیدی با این تفاوت که تو از میان کل روند آن آگاهانه عبور کردی و توانستی غرین زیبای خودت را در عالم اصیبی ببینی ضمنا این را بگویم که کالبد اسیری پس از عبور از روند مرگ در طبقه اسیری در اطراف محل مرگ خود باقی میماند و سالها طول میکشد تا روند زوال را طی کرده و کاملا ناپدید شود در این مقاطع زمانی اطرافیان تصور میکنند این شبه مالک پیشین آن است سر جهان اصیری معمولا وارد پوسته های به جامانده می شدند و با فریب دادن بستگان و دوستان متوفی تفریح می کنند. تا همینجا کافی است.